کلید عملی کردن برتری خفیف از زمان انتشار اولین نسخه کتاب برتری خفیف در سال 2005 تأثیرات آن را در زندگی مردم دیدم این کتاب در زندگی بسیاری از مردم تأثیر گذاشت در تمام این هشت سال سیلی از نامه‌ها و تماس‌ها به سوی من سرازیر شده بود که نشان میداد برتری خفیف چگونه زندگی آنها را دگرگون کرده بود آیا برتری خفیف مؤثر واقع می شود؟ مسلما برای هزاران نفر از مردم موثر واقع شده است آیا زندگی افراد را دوچار دیگرگونی کرده است مطمئنم که این کار را انجام داده است با این حال میدانستم که میتواند تأثیرات بیشتری بگذارد میدانستم که میتواند برای افراد بیشتری موثر واقع شود و برای آن دست از مردمی که همین حالا آن را در زندگیشان به کار می‌بندند تأثیرات بیشتری داشته باشد اما داشتن فلسفه درست همیشه به اقدامات درست منجر نمیشد و من بایستی یستی دلیل آن را میفهمیدم. میدانستم که هنوز یک قطعه گم شده وجود دارد. سال‌های متمادی آموخته بودم که فلسفه هر فرد نگرش او را تعیین می‌کند و آن نیز اقدامات او را تعیین می‌کند. و این اقدامات هستند که نتایج را به وجود می آورند. افراد برای اینکه به نتایج دلخواهشان برسند فقط لازم است اقدامات درست را انجام دهند یعنی همان چگونه انجام دادنها اما شما هر روز و هر روز اقدامات درست را انجام نمی دهید مگر اینکه که فلسفه درستی داشته باشید به عبارت دیگر مگر اینکه شما اهمیت و قدرت اقدامات ساده روزانه یعنی همان فلسفه برتری خفیف را کاملا درک کنید. وقتی فلسفه برتری خفیف داشته باشید، کلید نحوه انجام دادن آن چگونه ها را در دست دارید. میدانستم که این معادله چگونه عمل می‌کند. فلسفه درست، آنگاه نگرش درست، آنگاه اقدامات درست. یک مرحله میانی برای گذر از فلسفه به اقدام کردن وجود دارد. این مرحله میانی نگرش است. نگرش شما چیزی است که درک تان یعنی فلسفتان را به اقدامات واقعی تبدیل می کند. نگرش همچون یک پیوندگاه عصبی بسیار بزرگ است جایی که تکانه عصبی باید از یک انتهای عصب به انتهای دیگر آن جهش بیوشیمیایی انجام دهد. نگرش شما چیزی است که کیفیت آن جهش را تعیین می کند. واژه دیگر برای نگرش هیجانات است اینکه چه احساسی دارید؟ حتی با وجود فلسفهی مستحکم و تزلزل ناپذیر، احساسات می توانند بی و متزلزل باشند. شما می با تعهد واقعی به پیشرفت شخصی کنترل خود بر نگرشتان را بسیار بهبود بخشید. اما همانطور که من آموختهام از هر ده نفر به ندرت یک نفر پذیرای ایده های جدی و متمرکز پیشرفت شخصی است. گرچه در طول سالهای فعالیتم دیده هم که افراد بسیاری به نتایج زیادی دستی میدانستم که هنوز هم موارد بسیار زیادی وجود دارد که حتی با وجود درک مناسبی از فلسفه برتری خفیف، نگرش ضعیف افراد صد راهشان شده و زحماتشان را هدر داده است. چیزی که ما به آن نیاز داشتیم، کلیدی برای مدیریت نگرش بود و من آن کلید را پیدا کردم. چیزی که به آن پی بردم این بود که گرچه برتری خفیف انصری بود که مردم برای بهتر کردن زندگیشان به آن نیاز داشتند، شادی انصری بود که بسیاری از مردم برای عملی کردن برتری خفیف به آن نیاز داشتند. شادی همراه تمرینی فوق‌العاده‌ای برای برتری خفیف است. های شادی حالا احتمالاً در این فکرید که دقیقاً چه اقدامات روزانه‌ای هستند که شما را شادتر می‌کنند. چیزی که تحقیقات و مقالات روانشناسی مثبت به ما می‌گوید این است که شما می‌توانید از طریق چند تمرین که هم بسیار ساده هستند و هم انجام دادن آنها آسان است، مغزتان را مجددن برنامه برنامه‌ریزی کنید. نه هیچگونه تلاش بزرگ یا دگرگون‌سازی شخصی پیچیده لازم است، نه کاری قهرمانانه یا خارق‌العاده. فقط کارهای ساده، نسبتاً پیش پا افتاده و تکراری که انجام دادنشان آسان است و به صورت روزمره انجام میشوند. کارهای ای که اگر آنها را طی یک دوره زمانی مناسب به طور مداوم و مکرر انجام دهید، شما را به نتایجی میرسانند که در جستجویشان هستید. به عبارت دیگر، شما را شادتر می کنند. این موضوع بسیار شبیه برتری خفیف به نظر میرسد. در واقع همان برتری خفیف است. فقط برتری خفیفی است که به طور ویژه برای ایجاد شادی بیشتر در زندگی شما به کار برده شده است. من بانها آنها عادت‌های شادی میگویم. آدتهای شادی فقط شما را شادتر و خوشحالتر نمی کنند بلکه دقیقا نگرشی را ایجاد می کنند که شما برای جهش سیناپسی از فلسفه برتری خفیف به اقدامات برتری خفیف به آن نیاز دارید. به عبارت دیگر حالا آن اقدامات شروع به اثرگذاری روی شما می کنند. آن هم در همه جنبه های زندگی. اگر فلسفه برتری خفیف را در کنار عادتهای شادی قرار دهید، طولی نمیکشد که همه آن چگونه انجام دادنها شروع به اثرگذاری روی زندگی تان می کنند. به عبارت دیگر عادت بهتر غذاخوردن، برنامه ریزی تمرین ورزشی توجه به عادت مالی هوشمندانه‌تر پیشرفت شخصی بیشتر، ارتباطات قویتر و سالمتر توسعه تدریجی یک زندگی قدرتمند و مثبت همه و همه شروع به اثرگذاری روی زندگیتان می کنند. معادله از این قرار است برتری خفیف به علاوه عادت های شادی برابر است با موفقیت. به همین سادگی است من با آکور که نویسنده کتاب مزیت شادمانی است همکاری زیادی داشتم از آنجایی که من متعهد به گسترش شادی هستم او را به شرکتم دعوت کردم تا یک کارگاه آموزشی سه ساعته درباره شاد بودن برگزار کند شان مجموعه ای از پنج کار ساده را آموزش داد که می توان هر روز آنها را انجام داد و اگر آنها را در طول زمان به طور مداوم و مکرر انجام دهید شما را امیغن و به طور چشمگیری شادتر خواهند کرد. آنها اقدامات برتری خفیف برای شادی هستند یعنی همان عادتهای شادی. یک، هر صبح سه چیزی را یادداشت کنید که قدردان و سپاسگزار آنها هستید. هر روز همان سه مورد قبلی را ننویسید سه مورد جدید را پیدا کنید. این کار مغزتان را پرورش میدهد تا اوضاع و شرایطتان را کاوش کند و چیزهای مثبت را پیدا کند. دو هر روز به مدت دو دقیقه یک تجربه مثبت را که در 24 ساعت گذشته داشته اید در دفترچه یادداشت کنید هر گونه جزئیاتی را که به یاد می بنویسید. این کار باعث می شود مغزتان به معنای واقعی آن تجربه را دوباره دریابد و این کار تأثیر مثبت آن تجربه را دو برابر می کند. 3. هر روز زمانی را به مراقب کردن اختصاص دهید. فقط دست از تمام فعالیتهایتان بکشید، آسوده باشید و برای دو دقیقه مراقب دم و بازدمتان باشید. این کار مغزتان را آموزش می‌دهد تا در جایی که خواهانش هستید تمرکز کند و حواستان با چیزهای منفی پیرامونتان پرت و منحرف نشود. 4 هر روز به طور تصادفی یک عمل نیک و مهربانانه انجام دهید. شان اغلب یک عمل مهربانانه خاص را توصیه می کند. در ابتدای هر روز دو دقیقه زمان بگذارید و در جهت تمجید و تقدیر از کسی که لطفی در حق شما کرده است، یک ایمیل بنویسید و برایش ارسال کنید. پنج هر روز پانزده دقیقه ورزش کنید. یک ورزش ساده حوازی که زربان قلبتان را بالاتر ببرد. حتی یک پیاده روی توند تأثیر ضد افسردگی قدرتمندتر و در بیشتر موارد قویتر و پایدارتری نسبت به های ضد افسردگی دارد. بر طبق گفته های شان آکور، اگر شما هر یک از این کارها را فقط به مدت سه هفته یعنی 21 روز متوالی به طور مرتب و صادقانه انجام دهید به یک عادت تبدیل می شود، یک عادت شادی. شما به معنای واقعی کلمه مغزتان را طوری بازنویسی می کنید که جهان را به شیوه متفاوتی ببیند و در نتیجه هر روز شادتر می شوید. نکته جالب توجه این است که نیازی نیست همه این پنج کار را به یک بار انجام دهید. در واقع شان توصیه میکند که حتی سعی نکنید این پنج کار را با هم انجام دهید. در عوض فقط با یکی از این کارها شروع کنید و آن را بارها تکرار کنید تا به عادت تبدیل شود. سپس کار بعدی را اضافه کنید و همینطور ادامه دهید. در پس همه این پنج مورد منطق شگفتانگیز و تحقیقات قدرتمندی وجود دارد، اما اینها تنها عادتهای شادی نیستند که تحقیقات آنها را تایید میکنند. اینها فقط 5 نمونه خوب هستند. سایر محققانی که در زمینه شادی مطالعاتی انجام داده اند فهرست های متفاوتی دارند که شامل مواردی از این قرار است. وقت بیشتری را به دوستانتان اختصاص دهید. لذت بردن از لحظه حال را تمرین کنید. دیدگاه مثبت داشتن را تمرین کنید. به و پرورش ارتباطاتتان انرژی بیشتری اختصاص دهید. بخشش و گذشت را تمرین کنید. در فعالیت های مهم و معنادار مشارکت کنید. کمک کردن به دیگران را تمرین کنید. همه این موارد مشابه هم هستند و از یک قالب تحقیقاتی الهام گرفته شدند. از آنجایی که من برای پیشرفت شخصی و یادگیری ارزش بالایی قائلم، فهرست من شامل این مورد نیز هست. روزانه حداقل ده صفحه از یک کتاب خوب را مطالعه کنید. شما نیز احتمالاً عادت‌های شادی خاص و مورد علاقه خودتان را دارید که ممکن است با عادت‌های من کمی فرق داشته باشند اما یک چیز در همه آنها مشترک است آنها مؤثر واقع می‌شوند اگر این موارد ساده را هر روز و به طور مداوم انجام دهید پس از مدتی بسیار کمتر از آنچه انتظارش را دارید به فرد شادتری تبدیل می‌شوید و همین باعث می‌شود تا چیزهای دیگر نیز در زندگیتان بهتر شوند داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب جیم هاگمن، دالاس، ایالت تگزاس. مهم‌ترین عادت برتری خفیف من جستجوی یافتن چیزی مثبت در هر موقعیته و اصلا مهم نیست که اون چیز چی باشه. تجربای زندگی به ما یاد میدن که موارد منفی و رو ببینیم و با توجه به اون موقعیت ها واکنش نشون بدیم. به ما یاد میدن که به دنبال اشتباهات گذشتهمون باشیم به همین اندازه آسونه که در جستجوی کارهای باشیم که درست انجام دادیم و اونا رو مبنا و معیار اقداماتمون قرار بدیم زندگی فرصت‌های زیادی برای رشد و پیشرفت در اختیار ما قرار میده فقط باید حواسمون به با اونا باشه مایکل استاویکی ورشو لهستان من خوره کتابم تا قبل از سقوط کمونیسم تو لهستان کار دیگه‌ای برای انجام دادن وجود نداشت یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم که فقط دو تا شبکه داشت. من تا یازده سالگی کامپیوتر شخصی نداشتم. پس کتاب میخوندم و این کار عادتم شده بود. توی زندگیم صدها جلد کتاب خوندم. در اوت 2012 کتاب برتری خفیف رو خوندم. یک ماه کشید تا انجام دادن برخی از ایده های این کتاب شروع کنم. سالها بود که به طور جدی درباره زندگیم فکر نکرده بودم. من اضافه وزن و استرس داشتم و مدام نگران امور مالیم بودم. بی هدف بودم هیچ برنامه ایم برای زندگیم نداشتم. خیلی زود نوع کتابایی رو که می‌خوندم تغییر دادم و شروع به مطالعه کتاب بیشتری درباره پیشرفت شخصی کردم. تو عواسط نوامبر یه بیانیه مأموریت شخصی تهیه کردم که نقطه واقعی آغاز پیشرفت من بود. تو چند ماه بعدی تعداد زیادی از اقدامات مختلف برتری خفیف و تو زندگیم اجرا کردم و نتایج اونا به تدریج نمایان شد. برخی از دوستی‌های و دوباره از سر گرفتم و با آدم‌های جدیدی از سراسر دنیا دوست شدم. کمی بر خجالتی بودن و کم‌رویمم غلبه کردم، دوتا وبلاگ جدید به راه انداختم و شروع به نویسی کردم. نرمافزار وردپرس رو یاد گرفتم و وبسایتی با صدها نکته و اطلاعات مفید ایجاد کردم. از بازی‌های کامپیوتری که عادت بد من شده بود دست کشیدم و یه داستان کوتاه تخیلی نوشتم. کتاب ایلیاد نوشته همر رو خوندم و در میانه های کتاب اودیسه هستم. همچنین به بیش از صد ساعت مطالب صوتی آموزشی و انگیزشی گوش دادم. زندگیم شروع به تغییر کرد. 15 کیلوگرم از وزنم کم شد و همسرم 13 کیلوگرم وزن کم کرد. پس اندازم دو برابر شد و کمک‌های مالی من به سازمان‌های خیریه تا پنج درصد افزایش یافت. فهمیدم که حالا پنجاه درصد سریتر کتاب میخونم و پسر ده سالم دویست و پنجاه درصد سریتر مطالعه میکنه بدون اقراق تازه هاش بهترم شدن برای تولد همسرم بهش یه دفترچه قدردانی از کاراش هدیه دادم که اونو خوشحال و شگفت زده کرد میتونم رد پای برتری خفیف و در پشت هر یک از این موفقیتا ببینم من به یه نویسنده خود انتشار تبدیل شدم از دوران بچگیم رویای نوشتن و رو در سرم می اما هیچ وقت دربارش کاری انجام نداده بودم در حدود 100,000 هزار کلمه به زبان انگلیسی نوشتم که زبان مادری من نیست در حال حاضر دومین کتابچه راهنمام درباره کاهش وزن رو تموم کردم و قصد دارم توی این مجموعه چهار کتاب دیگه نیز بنویسم. مهمتر از همه اینا من شاد هستم و احساس سرزندگی میکنم. سه دفترچه قدردانی مختلف دارم یکی درباره همسرم یکی درباره فرزندانم و یکی درباره زندگی خودم هر روز سه صفحه کامل درباره قدردانی‌ها و ها می می‌نویسم احساس می‌کنم که هدف زندگیمو کشف کردم رؤیاهام تحقق می‌یابند و من این کار رو فقط با دنبال کردن اقدامات ساده‌ای که تو برنامه روزمره‌ام گنجوندم انجام میدم نکات مهم شادی با انجام دادن کارهای ساده و آسان و در ضمن انجام دادن هر روزه آنها به وجود می آید. موفقیت به شادی نمی انجامد بلکه عکس آن درست است. شادی بیشتر باعث موفقیت بیشتر می شود. افزایش سطح شادی باعث به وجود آمدن سطوح بالاتری از سلامتی، کارایی، مشارکت اجتماعی، رضایت از زندگی زناشویی، موفقیت مالی و شغلی و طول عمر می شود. شادی بیشتر کلید عمل کردن برتری خفیف در زندگی شماست. پنج عادت شادی شناکور. یک. هر روز صبح سه موردی را که قدردان آنها هستید یادداشت کنید. دو هر روز یک یادداشت دو دقیقه‌ای درباره تجربه مثبتی بنویسید که در 24 ساعت گذشته داشته اید. 3. هر روز زمانی را به مراقبه کردن اختصاص دهید. چهار در ابتدای هر روز برای یک نفر یک ایمیل قدردانی و تشکر یا تحسین بفرستید. 5 هر روز به مدت پانزده دقیقه ورزشی ساده انجام دهید